تا چند ز مسجد و نماز و روزه در میکده ها مست شو از دریوزه خیام بخور باده که این خاک تو را جام کنند و گه زبو گه کوزه بنگرز سبا دامن گل چاک شده بول ز جمال گل ناک شده در سایه گل نشین که بسیار این گل از خاک برامدست و برخاک شده دنیا به مراد راندگی را خرچه نامه عمر خاندگی را خرچه گیرم که به کام دل بمانیسد صد سال صد سال دگر به را خرچه دانیزه چه روی اوف تا دست و چرا آزادی سربسوسنن در افوا این دارد ده زبان و لیکن خاموش من دارد دست و لیکن کوتاه.